نشر مسیر سبز تقدیم می کند. سیستم تندرستی نویسنده: آنتونی رابینز گوینده عطیه بادامچی سالها سال من هیچ کنترلی بر روی جسم خودم نداشتم. بیش از 6 کیلوگرم اضافه وزن داشتم و تقریبا هیچ انرژی در بدنم حس نمی کردم. روزانه با اینکه بیش از هشت ساعت می اما هنگامی که بیدار می شدم، هنوز خسته بودم. احتمالاً این وزن برای شما هم پیش آمده است نه؟ موقع خوابیدن ساعتتان را تنظیم می کنید تا صبح زود از خواب بیدار شوید و به کارهایتان برسید. اما وقتی زنگ ساعت به صدا در میآمد من بیدار می شدم و آن را خاموش می کردم. اما تا ده دقیقه بعد هنوز هم نمی از جایم برخیزم. هوش سرشاری داشتم. همواره در پی آن بودم که تغییری در زندگیم ایجاد کنم. اما نمی توانستم هیچ کاری در مورد آن انجام دهم چون به شدت احساس خستگی و ضعف می کردم. میدانستم که اشکال کارم از جسمم هست اما توان تغییر آن را نداشتم. دوست دارید بدانید چه چیزی باعث شد که تغییر کنم؟ در ابتدا من شروع به خواندن کتاب های تغذیه تناسب اندام و تندرستی کردم، اما هر کتابی که مطالعه می کردم با کتاب دیگر تناقضات آشکاری داشته. در هر کتاب یک رژیم غذایی وجود داشت که کتاب دیگر کاملاً آن را نقض می کرد. نکته بسیار عجیبش این بود که تمام این کتاب ها نیز به دست پزشکانی مشهور نوشته شده بود. یک نفر برای سلامتی و لاغری پیشنهادی می داد که نفر بعدی دقیقاً آن را نقض می کرد. تمام اینها باعث شد که من بیش از پیش گیج و خسته شوم. این وضع همچنان ادامه داشت و نمی‌دانستم چه کار باید بکنم تا اینکه یک روز فکری به ذهنم رسید. تصمیم گرفتم به سراغ افرادی برم که شرایطی مثل من را داشتند و توانسته بودند به وضعیت جسمی مناسبی دست پیدا کنند. با آنها حرف زدم، به کتابها و مقالاتشان رجوع کردم. از روش های آنها آگاه شدم و دست آخر توانستم به یک چارچوب کلی مؤثر و کارآمد برسم. من با خیلی ها حرف زدم. این افراد توانسته بودند اضافه وزنشان را برطرف کنند و یا حداقل برای مدتی لاغر شوند. وجه مشترکی که در تمام آنها وجود داشت این بود که هیچ کدام از آنها از یک رژیم غذایی کوتاه مدت پیروی نمی‌کردند. دلیلش هم این هست که آنهایی که از رژیم قضاویی لاغری پیروی می کنند هیچ نتیجه ای نمی گیرند و یا اگر بتوانند خودشان را لاغر کنند، پس از مدتی کوتاه به وزن قبلشان و یا حتی بیشتر از آن بر می گردند. مشکلی که در این رژیم های غذایی لاغری وجود دارد این هست که مغز ما این نکته را میآموزد که رژیم قضاویی به معنای تحمل ناراحتی است. و چون مغز از ناراحتی دوری میکند رژیم غذایی را نخواهد پذیرفت. پس از چه می میتوان جسم را تقویت کرد؟ اولین گام این هست که برنامه‌ای برای تمام عمرتان تهیه کنید. اگر این برنامه به صورت موقت باشد به هیچ وجه موفقیت آمیز نخواهد بود. من این برنامه را تهیه کردم و قصد دارم به شما ارائه کنم. من برای تنظیم این برنامه از افرادی کمک گرفتم که به نتیجه دلخواه من رسیدند و آنها را به عنوان الگوی خود انتخاب کردم. من این برنامه را به دقت تنظیم کردم و نام آن را سیستم تندرستی گذاشتم. من با استفاده از همین سیستم در کمتر از 60 روز به نتایجی فراتر از باور دست یافتم. در یک ماه نخست توانستم پانزده کیلوگرم از وزنم کم کنم. با استفاده از آن هر روز به میزان انرژی بدنم اضافه کردم و پس از شهست روز به چنان سطحی از سلامتی دست یافته بودم که فراتر از تصورم بود. اگر با من آشنایی داشته باشید و به سخنرانی ها و سمینار های منگوش کرده باشید متوجه میشید که از کدام سطح از انرژی سخن میگویم. بله من اصلا آن آدم چند سال پیش نیستم میزان تفاوت امروز من و چند سال قبل من مثل تفاوت شب و روز است من خودم را موظف میدانم که هر روز به این برنامه عمل کنم و از آن برای رسیدن به موفقیت کمک بگیرم